ولمون بریان با مخلفات ده دقیقه به شش رسیدم به ایستگاه رادیو میخواستم سر وقت حاضر باشم تا نشان بدهم کاراگاه خصوصی وظیفه شناسی هستم که کار بهتری از مدام فکر کردم به بابل هم دارد جز خودم هیچ کس جلوی ایستگاه رادیو نبود مشتریم هر که بود هنوز نرسیده بود خیلی کنجکاو بودم ببینم سر کله چه کسی پیدا می شود زن است یا مرد اگر قرار بود زن باشد، امیدوار بودم خرپول و خوشگل باشد و دیوان وار عاشقم شود. از من بخواهد کار کاراگاه خصوصی را کنار بگذارم و زندگی پر تجملی پیشه کنم و من نصف وقتم را صرف او کردم و نصف دیگر را هم صرف رفتن در رؤیای بابل زندگی من می شد. برای آغازش بیتابی می کردم بد فکر کردم چه خواهد شد اگر مشتری که میخواد آفتابی شود آدمی از جنس سیدنی استریت باشد که میخواهد آشپز فیلیپینی را که با زن او سر و سری دارد زیر نظر بگیرم و من مجبور می ساعتها پشت پیشخان ای که آشپزه آنجا کار می کند بنشینم و پخت و پزش را تماشا کنم. ماجرا یک ماهی طول می کشد. هر هفته با سیدنی گرین ستریت در آپارتمان درندشتش در پاسیفیک هایتس قرار ملاقات میگذارم و مو به مو شرح میدهم که آشپز فیلیپینی این هفته چه کارها کرده. او به دانستن هر چیزی که به آشپز فیلیپینی مربوط شود علاقمند است تا حدی که حتی دلش میخواهد از لیست غذاهایی که چهار شنبه در کافه محل کار آشپز ارزه کرده اند با خبر شود. روبروی سیدنی گرین استریت در آپارتمان رویایی و پر از آثار هنری کمیابش مینشینم. آپارتمان چشم اندازه از از سان فرانسیسکو دارد و من گیلاس شری پنجاه سالی به دست دارم که پیتر لوره که نقش سرپیش خدمت را دارد دائم پرش می کند. پیتر لوره در مدت حضورش در اتاق ساکت و گوش به زنگ طوری رفتار می کند که انگار هیچ علاقهی به شنیدن مکالمات ما ندارد اما بعدم می بینم که پشت در گوش ایستاده و استراق زم می کند. سیدنی گرین بر در حالی که دست درشت و گوشتالوش را با حالتی بی تاسسب دور یک گیلاس ظریف شدی گرفته میگوید منوی چهارشنبه چی بود؟ پیتر لوره آن طرفه در باز اتاق نشیمن گوشی ایستاده و وانمود می کند مشغول گردگیری یک گلدان بزرگ است اما در واقع دارد به دقت به حرفهای ما گوش می میگویم سوپ شان سوپ برنج و گوجه بود سالت هم سالاد والدورف سیدنی گرین میگوید. من علاقه به سوپ ندارم، همینطور سالات، میخوام بدونم غذاهای اصلی چی بودن، میگویم، میبخشین، حال پول پول او بود، او بود که هزینه ها رو میپرداخت، غذاهای اصلی شامل اینها بود، میگوی سرخ کرده، ماهی خاردار دودی با کره و آبلیمو لیمون، فیله کفشک ماهی با ساس تارتار، خوراک گوشت گوساله با سبزی جت. خوراک گوشت گاو نمکسود با تخم مرغ کباب دنده خوک با سس سیب کباب جگر گوساله با پیاز کوفته جوجه کوفته ران خوک با سس آناناس شامی گوشت گوساله با سس سرخ شده جوجه کباب چند تکه ران خوک پخته ویرجینیا با سیب زمینی شیرین بوغلمون بریان با مخلفات استیک راسته گوساله پرواری با زارت. کباب فرانسوی دنده بره با نخود سبز، استیک راسته گوساله نیویورکی. می‌پرسد: هیچ کدوم از اینا را مزه کردی؟ می‌گویم: بله. کو بریان با مخلفات خوردم. در حالی که میزبان از روی سندریش به سمت من خم شده، می‌پرسد: چطور بود؟ می‌گویم: افتضاح. با حزی وافر در حالی که آب از دهنش را افتاده می‌گوید: چه بهتر نمیفهمم اون چی تو اون یارو دیده خوک کثیف هر دوشونو میگم. لایق همن بعد مکز میکند و دوباره راحت به صندلی تکیه میدهد یک جرعه اساسی بالا میاندازد با آن چشمای خمار استواییاش با خوشنودی به من نگاه میکند میپرسد بو بریان با مخلفات افتضاح بود لبخند محوی روی صورتش مینشیند و میپرسد واقعا بد بود؟ میگویم مخلفاتش بدترین مخلفاتی بود که تا به حال امتحان کردم فکر کنم از گوه سگ بود نمیدونم چطور همچین چیزی رو میخورن من فقط یه لب زدم و همین برام بس بود سیدنی گرینستریت میگوید چه جالب واقعا جالبه به پیتر لوره نگاه می کنم که دارد وانمود می کند مشغول گردگیری گلدان سبز است که عصب سوارهای چینی روش در حال تاخت و تازند شاید او هم فکر می کند نظرم درباره بوغلمون بریان با مخلفات جالب است Cinderella خطوط هوایی همانجا جلوی ایستگاه رادیویی WXYZ سیندرلا خطوط هوایی ایستاده بودم و داشتم به سیدنی گرین و پیتر لوره و بوغلمون بریان با مخلفات فکر می کردم که لیموزین کادیلاکی که همان روز وقتی داشتم از پزشکی قانونی بیرون می آمدم دیده بودم جلوی پام ترمز کرد و در عقب خود به خود برام باز شد بلانده خوشگری که وقت بیرون آمدن از پزشکی قانونی دیده بودم، رو صندلی عقب لیموزی نشسته بود. با چشماش اشاره کرد که سوار شوم. آبی چشماش تحریک کننده بود. پریدم بالا و کنارش نشستم. کت خزیتنش بود که سرتاپای تمام آشناهای مرا دوبار میخرید و آزاد میکرد. لبخندی زد. گفت. چه تصادفی؟ ما هم دیگر رو دم پزشکی قانونی دیدیم. دنیای کوچیکیه گفتم همینطوره تصور میکنم که شما گفت من مشتریم شما اصلحه دارین گفتم بله یه هفتهایر دارم گفت خوبه خیلی خوبه گمونم داریم با هم دوست میشیم دوستای صمیمی گفتم چرا به یه نفر مسلح نیاز دارین من چیکار قرار بکنم لبخن زنان گفت من همه ای این فیلما را حفظم دندان های BA با نقصی داشت آنقدر بیA و نقص بودند که حواسم را متوجه دندان خودم کردند انگار که دهنم پر از خورده شیشه بود همان راننده که قبلا دنبال بلنده آمده بود پشت فرمان بود گردانش حسابی کلافت بود از وقتی سوار ماشین شده بودم یک بار هم پشت سرش را نگاه نکرده بود همانطور به جلو خیره شده بود تبر گردنش را نمیزد بلوند مایه دار گفت: راحتی؟ گفتم: البته. و فکر کردم این فیلم را قبلا دیدم. گفت: آقای کلیولند روی صحبتش با راننده بود که جوابش را با تیکه گردن داد. ماشین آهسته به سمت پایین براه افتاد. با حالتی خودمانی گفتم: کجا قرار بریم؟ گفت: میریم سوسالیتو یه آبجویی بزنیم. چی بناسر می رسید آخرین چیزی که از وجناتش برمی این بود که آب جو خور باشد گفت تعجب کردی به دروغ گفتم نه لبخندی زد و گفت رو راست نیستین آن دندان ها عجب چیزی بودند گفتم باشه یه خورده تعجب کردم پول داشت و من هم هر بازی که او می‌خواست می‌کردم وقتی میگم آبجو میخوام، همیشه همه تعجب میکنن. طبعاً فکر میکنن یه خانم شامپانی نوش باشم. به خاطر سر و لباسم. اما ظاهر گول زننده است. کلمه یه شامپانی را که بر زبان آورد، گردن راننده دچار تیک شدیدی شد. بلونده گفت، آقای کارد. گفتم، آه، نگاهم را از پشت گردن راننده به سمت او برگرداندم گفت، شما اینطور فکر نمی کنی؟ یا شما هم از اوناییم که تحت تأثیر ظاهر آدم قرار می گیرن؟ گفتم که او پول داشت و من هم پولکی میخواستم راستش راستشو بخواین خانم، من هم تعجب کردم که شما اهل آبجو هستین. گفت، دوشیز آن صدام کن. باشه، شیز آن. تعجب می که شما آبجو را به شامپانی ترجیح میدین. گردن راننده دوباره دچار تیک شدیدی شد. لعنتی چه اتفاقی داشت میافتاد؟ گفت: تو اهل شامپانی هستی؟ و به محض اینکه شامپانی از دهنش درآمد، گردن راننده تیک زد. تیکی آنقدر شدید و قوی که به نظر میرسید انگشتت را به آن میزدی خورد و خاکشیر میشد گردن یارو چیزی بود که باید حتما تو حساب و کتابت منظور می بلوند گفت: آقای کارت گوشت با منه؟ تو اهل شامپانی شامپانی دوست داری؟ گردن دوباره از جا پرید مثل گوریلی که میله های قفصش را به لرزه در می آورد. گفتم نه من بوربون دوست دارم. کلاق پیر با یخ. گردن راننده دیگر تیک نمی زد. بلونده گفت چه بامزه؟ اوقاته خیلی خوشی با هم خواهیم داشت. گفتم چه کاری قرار بکنیم؟ گفت نگران نباش برای حرف زدن دربارش یه عالم وقت داریم گردن راننده آرام گرفته بود و ما از سانفرانسیسکو به سمت پل دروازه طلایی میرفتیم به عینه میدیدم این گردن میتواند در آینده درد سرساز باشد فکر میکردم اگر سر و کار کسی با این گردن بیفتد چه به حال و روزش خواهد آمد از تصور این ماجرا اصلا خوشم نمی آمد سعی کردم به جنبه مثبت گردن بچسبم. اگر آبم با این گردن تو یک جوب می‌رفت، می‌توانستیم رفقای خیلی خوبی برای هم باشیم. گردن از کلمه شامپانی خوشش نمی‌آمد. باید خیلی مراقب باشم در آینده این کلمه را هیچ وقت به کار نبرم. گردن از کلمه بوربان خوشش می‌آمد. پس این کلمه‌ای بود که او دوستش داشت زیاد بشنود. لبنتی خودم را درگیر چه مخمسی می‌کردم. از خیابان لومبارد به سمت پله دروازه طلایی رفتیم. سمت مخمصه ای که داشتم خودم را درگیرش میکردم. اسمیت اسمیت در جدال با سایه های ربوتی در نیمه های پل دروازه طلایی نشسته در کنار یک خانم خوشگل مایه و یک گردن قولاسای بسیار بیقرار که ماشین را میراند به یاد اسم سریالم درباره یک کارگاه خصوصی در بابل افتادم اسمش را میگذارم. اسمیت اسمیت در جدال با سایه های رباتی عجب عنوان محشری از فرط لذت انان اختیار از کف داده بودم مشتریم که چند دقیقه بود در طول راه حرفی نزده بود گفت قضیه چیه؟ میخواستم اسم سریانم را با صدای بلند تکرار کنم. از خود بیخود شده بودم، اما توانستم بعد از بر زبان آوردن اولین کلمه در دهنم را گل بگیرم. گفتم، اسمیت! و انگار که فیلی روی زبانم افتاده باشد، بقیه حرفم روی دهانم مند. مشتریم گفت، اسمیت؟ کردن راننده انگار میخواست تیکی بزند لعنتی اصلا دارم نمیخواست تیک بزند گفتم هیچی یادم افتاد که دیروز روز تولد یکی از دوستان بوده و من پاک فراموش کرده بودم میخواستم یه هدیهای بهش بدم اسمش اسمیته آدم خیلی جالبیه ماهیگیره یه قایق پایین بارانداز داره من و پسر اون با هم بزرگ شدیم هر هردومون دبیرستان گالیله میرفتیم مشتری بلند مایع دارم گفت آه. با صدایی که لحنش نشان میداد بفهمی نفهمی حوصلش سر رفته علاقه به شنیدن داستان ماهیگیری به نام اسمیت نداشت نمیدانستم اگر حرفی را که شروع کرده بودم تمام می واکنشش چه بود؟ اسمیت اسمیت در جدال با سایه های روبوتی برای خودم خیلی جالب بود ببینم با این یکی چطور برخورد می کند خوشبختانه فقط همان یک کلام اسمیت را گفته بودم ممکن بود مشتری را از دست بدهم یا بدتر از آن گردن وارد عمل شود گردن حالا آرام گرفته بود فقط ماشین را رو روی پل میرند یک کشتی باری در میان موچا پیش میرفت خش روی آب آبگوته میخورد مشتریم گفت میخوام یه جسد و برام بدستیم روزنامه صبح گفتم چی؟ چون در چنان موقعیتی واقعا لازم بود بگویم چی و هیچ حرف دیگری جز یک چی مناسب این موقعیت نبود میخوام یه جسد و از پزشکی قانونی برام بدستی دیگر هیچ حرفی نزد چشمهاش آبی بود حتی در فضای تقریبا تاریک داخل ماشین هم آبی چشمهاش راحت دیده میشد چشمهاش را به من دوخته بود این چشمها از من جواب میخواستند گردن هم جواب میخواست گفتم خیلی خوب اگه پولی که میرسه جالب توجه باشه جسد آبرام لینکون رو هم فردا با روزنامه صبح میذارم دم درتون این دقیقا همان چیزی بود که بلونده میخواست بشنود گردن هم همین را میخواست بشنود بلونده گفت هزار دلار چطوره گفتم 1000 دلار یک قبل جسد براتون میارم کلاس شامپانی با زائقه آبجو در بار کوچکی در سسیت تو نشسته بود از آنجا روشنایی های سان فرانسیسکو در آبهای خلیج درخشش زیبایی داشت. مشتری با آبجوش خوش بود. با آبجو حسابی حال می کرد. آبجو خوردنش آنطوری نبود که از او انتظار می رفت. برخوردش با آبجو هیچ چیز خانمانهی نداشت. آبجو رو مثل یک کارگر بارانداز در روز دریافت حقوق سر می کشید. کت خزش را درآورده بود. و زیرش لباسی به داشت که زیبایی دلبرانش را برجسته میکرد. می در کل درست مثل یک داستان کارگاهی آم پسند بود. نمی باور کنم. گردن بیرون توی ماشین منتظر ما بود. برای همین در برخورد با بلونده احساس راحتی بیشتری میکردم. اگر دلم میخواست میتوانستم می, می کلمه شامپانی را بدون آن حراس ناشناخته بگویم. دنیا قطعا جای غریبی است. تحجابی ندارد که من این همه وقتم را صرف رؤیای بابل می کنم. این امن تر است. در حالی که خانم مایدار زریف و را که خودش را به آبجو بسته بود سیاحت می کردم، گفتم جسدی که می بدزدم به کجاست؟ بعدش هم آرق. گفتم شما واقعا با آبجوتون حال می اینطور اینطور نیست؟ گفت کلاسم به شامپانی می خوره اما زائقا با آبجو سازگاره. اسم شامپانی را که آورد چشمان بی اختیار بر را به دنبال گردن گشت خدا را شرک تو ماشین بود گفتم حالا بریم سر این جسدی که شما میخوایین گفت جسد رو کجا نگهداری میکنن؟ طوری گفت که انگار من یک خورده کندم گفتم خیلی جاها اما بیشتر تو خاک برای این کار بیل لازم دارم؟ گفت نخنگ خدا جسده تو پزشکی قانونیه پزشکی قانونی محل مناسبی واسه نگهداری اکساد نیست گفتم چرا هست جرعه اساسی دیگری سر کشید به دختر پیشخدمتی که مشروب سرو میکرد اشاره کردم که باز هم برامان آبجو بیاورد در این فاصله مشتریم گیراسی را که جلوش بود تمام کرد به گمانم میخواست رکورد جهانی زن مایدار آبجو را به نام خودش ثبت کند فکر نمی کنم جانی مولر هم توانسته باشد با این سرعت آبجو بیاندازد بالا پیشخدمت آبجوی دیگری جلوی او گذاشت من هنوز كلاق پیر با یخم را مزمزه می کردم که همان اول که وارد بار شدیم سفارش داده بودم این تنها نوشیدنی من بود من به آن معنا آدم اهل مشروبی نبودم هر از گاهی لبیتر میکردم و صخفم هم یک گیلاس بود بلونده با همان عتشی که به آب اول نشان داده بود به سراغ آبجای دوم رفت راست میگفت واقعا آبجوخور بود گفت فکر می کنی بتونی از پس دزدیدن یه جسد از پزشکی قانونی بر بیای گفتم آره از پسش برمیام چیزی مثل خرگوش سالن تیراندازی یکهو توی ذهنم سرک کشید. پاچوبی به من گفته بود که بلنده آن فاهشهی مرده را دیده بود تا احیاناً به عنوان بستگانش شناسایی کند اما گفته بوده طرف آن کسی نیست که او فکر می کرده و در تمام طول ماجرا خیلی هم خون سرد بوده انگار که دید و بازدید از مردهها ها امورات روزمرش است یاد آهانالش وقتی بیرون آمدن از پزشکی قانونی افتادم موضودش جالب می شد بابی خیلی گفتم حالا این جسدی که میخواین از پزشکی قانونی بدوزدم، جسد کی هست؟ گفت، کیش مهم نیست. این به خودم مربوطه. من فقط میخوام اون جسد رو برام بدوزدی. جسد یه زن جوونه. طبقه بالا تو اتاق کالبادش کافیه. یه مخزن چهار قسمتی واسه یه تو دیوار ساختن. اون تو قسمت بالا سمت چپه. یه برچسب جیندو روشسته پاش داره. برام بیارش گفتم باشه و که بلند کردم کجا میخوایین تحویلش بگیرین گفت میخوام بیاریش یه قبرستون گفتم عین آب خوردنه به هر حال همه ی جسد آخر خطشون همونجاست آبجوی دیگری براش سفارش دادم آبجوی دومی رو هم تمام کرده بود به عمرم هرگز ندیده بودم لیوان آبجوی به این سرعت خالی شده باشد عملا آبجو را نفس میکشید گفت ممنون گفتم جسد و می گفت امشب گورستان آسایش الهی گفتم اینگار عجله دارین بعد گفتم حالا ممکنه بپرسم با جسده چیکار میخواین بکنین گفت خودت بگو پسر باهوش تو باشی با جسد توی قبرستون چیکار میکنی گفتم، آکی، گرفتم، میخواییم با خودم بیرم بیارم گفت، نه، تو فقط همون جسد رو بیار قبرستون و باقیش به عهده ما، همه یه چیزی که ما از تو میخواییم همون جسده اینطور فرض کردم که منظورش از ما حتما خودش با آن گردن است آبجوی دیگری برای سفارش دادم زلزله در کارگاه سندانسازی روی سندری عقب لیموزین نشسته بودیم و گردن داشت ما را به سان برمیگرداند برمی کردند که گفت الان هفت و نیمه میخوام اون جسد ساعت یک نیمه شب تو قبرستون باشه موجز و مختصر حرفش را زد و کمترین اثری از آن شش ششتاب جوی که با رکورد چکنی زمانی بالا انداخته بود دیده نمیشد گفتم باشه. اما اگه دیر کردم میتونین بدون من شروع کنین. گردن در صندلی جلو تیکی زد. محض شوخی گفتم. <تصفيق> بلنده گفت. خیلی مهمه که جسد ساعتی یکی نیمه شب اونجا باشه. نزدیک من نشسته بود و نفسهاش اصلا بوی آبجو جونه تازه بعد از بالا انداختن شش تا آبجو بدون اینکه دستشویی برود یک راست به سمت ماشین رفته بود. منده بودم آن همه رو کدام جهنم در ری ریخته؟ گفتم نگران نباشین جسد و سر وقت میرسونم گفت خوبه قبل از اینکه دوباره دهن باز کنم مکسی کردم میخواستم کلمات درستی برای بیان پیدا کنم اصلا دلم نمیخواست حرف نسنجیده و نابجایی از دهنم بیرون ببرد گفتم من نصف مبلغ و پیش میگیرم به علاوه سیصد دلار هم برای مخارج معمول لازم دارم سیبیل چند نفری رو باید کنم. کنم. گمونم خودتون حتما میدونین که دزددیدن یه جسد از پزشکی قانونی یه کار معمولی پیش پا افتاده نیست مقامات اصلا دوست ندارن جسداشون گم بشه آدمای فضول هم که هستن. برای تهیه جواب سؤالاشون پول لازمه گفت میدونم نگاهی به او آب آبچههارا کدام جهنم در ری ریخته بود به گردن که در حال رانندگی بود گفت آقای کلیولند و گردن دست کرد توی جیب کتش یک دست اسکناس در آورد و دست من داد دسته اسکناس دقیقاً هشت صد دلار بود هشت تا ست دلاری انگار ذهن مرا خانده بودند بلونده گفت خوبه؟ پول را که توی دستم دیدم تقریبا از حال رفتم فاصلهم با چنین پولی مثل فاصله نجومی هم با نزدیک ترین ستارا. از وقتی که پولی بابت تصادف با ماشین گرفته بودم دیگر رنگ همچ پولی را ندیده بودم. این قطعا آغاز سیر سعودی زندگی من بود. شادتر از این نمیتوانستم باشم توی ماشین نشسته بودم از پر دروازه تلایی رد می شدیم و همه یه کاری که برای به دست آوردن آن پول باید میکردم بلند کردن یک جسد بود. بعد گردن برای اولین بار به حرف آمد با صدایی که مثل زلزله ای در کارگاه سنددان بود. صدا از جلوی گردن می آمد و گردن زحمت این را هم به خودش نداد که سرش را برگرداند گردن گفت گه نزنی ما اون جسد و می خواییم. کارگاهان خصوصی سان فرانسیسکو حرف گردن را جدی نگرفتم دیدن آن جسد اصلا مشکل نبود هیچ درد سری نداشت جسد عملا همین حالا توی گورستان بود از عوارزی که رد می شدیم احساس عجیبی داشتم روی بام دنیا بودم دوباره پول می توانستم یک قدری از بدهی هام را صاف کنم می توانستم دوباره دفتری داشته باشم و شاید یک منشی پاره وقت حتی می ماشین مدل پایینی برای این وران ور رفتن دست و رفتن دستپا کنم. برای من اوضا بهتر از این نمیشد. دنیا را از پشت شیشه های قرمز تماشا میکردم و دیگر اهمیتی نداشت که نمیتوانستم بفهمم آن شش لیوان آبجو در کجای مشتری با کلاسم گم و گور شده. بالاخره یک جایی رفته بود. بیشتر از این دیگر به من مربوط نبود. خیالم راحت شده بود. و با این حال نکته به ذهنم رسید. نتوانستم از مطرح کردن آن خودداری کنم گفتم راستی شما چطوری منو پیدا کردین منظورم اینه که یک عالم کارگاه خصوصی تر از من توی سانفرانسیسکو هست چرا منو انتخاب کردین بلوند مایه دار گفت تو تنها کسی بودی که میشد واسه دیدن یه جسد بهش اعتماد کنیم کارگاه های دیگه ممکن بود اما و اگر هایی داشته باشن. تو نداری البته راست میگفت اصلا به بر نخورد. هیچ چیزی برای پنهان کردن نداشتم. گفتم از کجا منو پیدا کردین؟ بلونده گفت من منابع خودم رو دارم. گردن گفت گوه نزنی تمرین برای آینده جلو یک مجتمع مجلل که دربانی دم درش بود چند چهارراه آن طرفتر از جایی که زندگی میکردم گفتم پیادم کنند گفتم آنجا زندگی میکنم ماشین جلوی مجتمع نگه داشت تا پیاده شوم. دربان با کماشکاوی نگاهم هم میکرد گفتم ممنون که منو تا خونه رسوندین از ماشین که پیاده شدم گردن سرش را به سمت من برگردند و گفت چرا میخوای اینجا شی؟ تو که اینجا زندگی نمی کنی؟ تو جاد تله موش چند تا اون طرف داره. البته شاید یه خورده پیاد روی لازم داری. ببین، واسه ما مهم نیست تو کجا زندگی میکنی؟ ما فقط میخوایم اون جسد، یک نیمه شب، رأس ساعت، جلوی دروازه جنوبی گورستان آسایش الهی باشه. من آنجا ایستاده بودم و حرفی برای گفتن پیدا نمیکردم. این آدم ها کی بودند؟ چطور این همه اطلاعات را به من داشتند؟ فکر نمیکردم اینقدر سرشناس باشم بالاخره گفتم دارم تمرین می کنم. یه روزی میام اینجا زندگی کنم هه. گردن دوباره به حرف آمد که گوه گفتم می دونم. گوه نزنم بلنده با کلاس با آن شش لیوان آبجو که یک جایی توی آن پیکر زیباش پنهان شده بود گفت؟ به دیدار آقایی کرد ماشین آهسته به راه افتاد همانطور تماشاش میکردم که پیچید و گم شد دروان شروع کرد به جارو کشیدن پیاده رو همان نزدیکی من را جارو میکشید